مرد ریشتلایی روزگارای قدیم پادشاه مقتدری زندگی میکرد که یه فرزند پسر داشت. پادشاه و ملکه پسرشون رو خیلی دوست داشتن. پسرش هنوز کوچیک بود که یه روز پادشاه رو به همسرش کرد و گفت احساس میکنم زمان مرگ من فرا رسیده. قول بده که بعد مرگ من ازدواج نکنی و تمام زندگیت رو وخف بزرگ کردن و تربیت فرزندمون بکنی. ملکه بعد از شنیدن این حرفها های های شروع به گریه کرد. هقه هق به پادشاه گفت که هرگز آخر عمرش دوباره ازدواج نمیکنه. و تموم تلاش خودش رو برای آسایش و راحتی فرزندش به کار میگیره. این قول ملکه قلب دردمند پادشاه رو تسکین داد. یکی دو روز بعدم پادشاه با خیال آسوده و بدون دغدغه خاطر از دنیا رفت. اما چند ثانیه بعد از اینکه روح از بدن پادشاه جدا شد، ملکه با خودش گفت قول دادن یه بحثه و عمل کردن به اون بحث موضوع دیگه ایه. و ملکه بین راه گورستان تا قصر دلباخته نجیب زاده ای از کشور همسایه شد. و بعدش هم باش ازدواج کرد و به جای فرزندش اونو رو تخت پادشاهی نشوند شوهر جدید ملکه مردی ظالم و ستمگر بود با پسر ملکه بدرفتاری میکرد اونو گرسنه نگه میداش براش لباس نمیخرید اگه ترس از خشم مردم نبود بدون لحظه ای صبر پسر ملکه رو میکشت و از بین بر تو زمین اطراف قصر هم جویباری بود که به جای آب شیر توش جریان داشت. مردم چه فقیر و چه غنی کنار این جویبار می اومدند و هر اندازه که دلشون می‌خواست شیر بر پادشاه جدید اولین کاری که کرد این بود که مانع از نزدیک شدن مردم به این جویبار می شد. یتداد نگهبان اطراف اون گذاشته بود تا کسایی رو که از این دستور سرپیچی می‌کردند بازداشت کنند. البته این کار پادشاه جدید از روی بغز و حسد بود و شیر کافی به همه می رسید. چند روز اول کسی جرعت نمی نمیکرد به جویبار نزدیک بشه. اما آخرش نگهونا متوجه شدن که هر روز اوایل صبح مردی با ریش طلایی کنار جویبار میاد و سطلش رو پر از شیر میکنه و بعد هم یه دفعه غیبش میزنه. انگار دود میشه و میره هوا. به خاطر همین نگهبانا ها نمیتونستن دستگیرش کنن آخرش هم ناچار شدن که موضوع رو به اطلاع پادشاه برسونن پادشاه اولش این داستان رو باور نکرد اما بالاخره بعد از اصرارهای نگهبانها تصمیم گرفت که خودش به کنار جویبار بره و از چگونگی اون موضوع باخبر بشه عوایل صبح دوباره اون مرد ریشتلایی ظاهر شد سطلش رو پر از شیر کرد و دعه قیبش زد پادشاه بعد از دیدن این صحنه بههت زده شد و اون چرا که میدید اصلا باور نمیکرد اون چیزی که پادشاه رو بیشتر به فکر فرو برده بود این بود که چجوری باید این مرد رو دستگیر کنه اگر هم دستگیر می کرد نمیدونست که باید با اون چیکار بکنه. پادشاه تصمیم گرفت که دستور بده یه قفس بسازند تا اون مرد رو بعد از دستگیر کردن داخل اون قفس بذاره. این خبر تو کشورهای همسایه پخش شد. چرا که اون زمون دوستها تو زندان نگهداری می شدن و این روش پادشاه گشیوه جدید به حساب میومد. به خاطر همین مقدمات کار برای دستگیری اون مرد ریشتلایی آماده شد. پشت هر بوته یه نگهبان گذاشته میشد تا به محض اینکه که کنار جویبار اومد و خم شد تا سطلش رو کنه دستگیر بشه. اما این نقشم، کارساز نبود روزها از پی هم می و میرفتن برای این بدون اینکه نگهبونا قادر به دستگیری اون باشند سطل خودش رو پر از شیر میکرد و توی چشم به هم زدن ناپدید می شد. پادشاه از این ناکامی خودش دیگه به خشم اومده بود تصمیم گرفت که هرکس راه تازهای برای دستگیری اون ارائه کنه پاداش خوبی بهش بده اولین کسی که راه تازه برای دستگیری اون مرد پیشنهاد کرد، یه سرباز پیر بود. اون به پادشاه گفت اگه یه مقدار نون و آب هم کنار جویبار بذاریم، مطمئنا ریشتلای اونها رو میخوره و مینوشه. اما داروی خواباوری که توی اون آب میریزیم باعث میشه که اون بلا فاصله خوابش ببره. اون وقت ما میتونیم براحتی اون رو دستگیر کنیم و توی قفس بندازیم. پادشاه از این نقشه خوشش اومد دستور داد که یه مقدار نون و یه ظرف آب هم کنار جویوار بذارن. در زم، تعداد ها را هم دوبرابر برابر کرد. و بعد هم پادشاه با امیدواری هرچه تمام منتظر نتیجه کار شد. همه چیز طبق پیشبینی سرواز پیر پیش میرفت. صبح روز بعد، ریشتدایی کنار جویوار اومد. بعد از خوردن نون و آبی که براش گذاشته بودن، به خواب سنگینی فرو رفت به همون لحظه نگهبونا بالایی بالای سرش رفتند و با تناب دست و پاهاش رو بستند و اون رو پیش پادشاه بردن پادشاه دستور داد اون رو تو قفس تلایی حفظ کنن انقدر از این موفقیت خودشون خوشحال بودن که این زندونی رو به همه افراد قریبهی که به قصر می اومدن نشون میدادند. وقتی مرد بیچاره از خواب بیدار شد و خودش رو توی قفس زندانی دید سعی کرد که با اونها حرف بزنه اما هیچکس به حرفای اون گوش نداد. به خاطر همین تصمیم گرفت دیگه حرفی نزنه و سکوت کنه. افرادی که دسته دسته برای تماشاش می اومدن فکر میکردند که اون یه جنگلی کرولاله. مرد بیچاره تمام روز رو آهاناله می کرد و حتی لب به غذا نمی زد. پادشاه از ترس اینکه اون در اثر گرسنه‌موندن بمیره و از عذاب مجازاتی که در انتظارش بود خودش رو خلاص کنه به سراشپز قصر دستور داد که برای اون غذای سلطنتی بپزه از مدت زمان اسارت مرد ریشتلایی یک ماه گذشته بود که پادشاه برای فرماندهی صفاهیانش تو نبردی که با کشور همسایه براش پیش اومده بود، باید قصر رو ترک میکرد. اما پادشاه قبل از رفتنش پسر ناتنیش رو صدا زد و گفت گوش کن پسر تو مدتی که نیستم مراقبت از این زندونی رو به تو می‌سپارم کاری کن که اون غذای کافی بخوره و در ضمن حواستم جمع باشه که فرار نکنه اگه برگردم و ببینم که زندانی فرار کرده مجازاتی جز جزمرد در انتظارت نیست شاهزاده جوون از رفتن پادشاه به جنگ خیلی خوشحال شد و تهیدرش آرزو کرد که کاش زنده از میدون نبرد بر نگرده. پسرک مجبور بود که تمام روز و شب رو توی اتاقی ریشتلایی توش زندونیه نگه بده. حتی اون بازیاش رو هم کنار قفس مرد زندونی میکرد. یکی از روزها که پسرک مشغول تمرین تیراندازی بود، یکی از تیرهاش توی قفص مرد ریشتلایی افتاد. شاهزاده به طرف قصد رفت و به زندونی گفت لطفاً اون تیر رو به من بده. اما مرد ریشتلایی جواب داد در صورتی تیرت رو پس میدم که منو از این قفص آزاد کنی. پسرکم جواب داد من اجازه انجام همچین کاری رو ندارم. اگه این کار بکنم ناپدرین بعد از برگشتن از میدون جنگ بلا فاصله دستور کشتن منو میده در ضمن تیر من به دردتو نمیخوره. بهتر اون رو پس بدی. مرد ریشتلایی از لای نردههای قفس تیر رو به پسرک داد اما وقتی تیر رو به اون پس میداد، این بار به اون التماس کرد که در قفس رو باز کنه و اون رو آزاد کنه دل پسرک در مقابل این همه آه و ناله ها و التماس های اون برهم اومد به خاطر همین چفت قفس رو باز کرد و مرد ریش‌تلایی از توی قفس بیرون اومد ریشتلایی گفت این محبت تو رو وقت فراموش نمیکنم. قول میدم که اون رو تلافی کنم. بعد هم دوباره توی چشم به همزدن قیبشتد. پسرک با خودش گفت حالا وقتی پادشاه برگرده چه جوابی بهش بدم؟ شاید بهتره که خطر مرگ رو به جون بخرم و به پادشاه بگم که اون رو آزاد کردم. بعدم با خودش فکر کرد و گفت نه بهتره هر چی زودتر اینجارو ترک کنم. شاید دنیای بیرون مهربونتر از پدرم با من رفتار کنند. وقتی که صبح شد، پسرک راه سفر رو در پیش گرفت. اون به مدت چند روز شبها توی کوها و دره ها سرگردم بود. برای رفع گرسنگیش از میوه ها و دونه جنگلی استفاده می تا اینکه یه روز صبح یه کبوتر وحشی رو روی شاخه درختی دید. برای فاصله یه تیر تو کمونش گذاشت و به سمت اون هدف گیری کرد. اما با شنیدن صدای کبوتر، تیر و کمونش رو روی زمین انداخت. کبوتر بهش گفت آی شاهزاده مهربون خواهش میکنم از کشتن من صرف نظر کن. من توی لونم دوتا جوجه دارم که چشم انتظار من. اگه براشون غذا نبرم اونو حتما از گرسنگی میمیرن. شاهزاده دلش به رحم اومد و از کشتن کبوتر خودداری کرد. کبوترم در مقابل این محبت شاهزاده بهش گفت قول میدم این محبتت رو یه روز جبران کنم. شاهزاده ازش پرسید آی کبوتر بیچاره تو چجوری میخوای محبت منو تلافی کنی؟ کبوتر جنگلی هم جواب داد مگه این زربال مسئل یادت نیست که میگن اگه کوه به کوه نرسه آدم به آدم میرسه؟ شاهزاده از این جواب کبوتر خندید و بعد هم به راه خودش ادامه داد. بعد از تیه نزدیک دریاچه بزرگ رسید. بین نیزارهای کنار ساحل چشمش به یه مرغابی وحشی افتاد. وقتی پدرش زنده بود و همه چیز در اختیارش بود همیشه هوس خوردن غذای مرغابی وحشی میکرد. به خاطر همین با دیدن مرغابی وحشی تیر رو تو کمونش گذاشت و به طرف اون نشونگیری کرد. مرغابی وحشی فریاد کشید و گفت اهیشاهزاده خواهش میکنم میکنم از کشتن من صرف نظر کن. توی خونم دوتا تا جوجه چشم انتظار منن. اگه براشون غذا نبرم حتما از گرسنگی میمیرن. شاهزاده بیچاره دوباره دلش به رحم اومد و کمونش رو پایین آورد. مرغابی وحشی هم به شاهزاده گفت: قول میدم این محبت شما رو یه روزی تلافی کنم. شاهزاده دوباره بهش گفت: تو چجوری میتونی محبت منو تلافی کنی؟ مرغابیم هم جواب داد مگه این ضرب المثل یادت نیست که میگن اگه کوه به کوه نرسه آدم به آدم میرسه و شاهزاده از این جواب مرغابی وحشی هم خندید و به راه خودش ادامه داد هنوز از ساحل دریاچه خیلی فاصله نگرفته بود که یه لکلک لک رو دید که روی یه طاشت ایستاده شاهزاده دوباره تیر رو تو کمونش گذاشت و به طرف اون نشونه کرد مثل دفعه های قبل لکلک لک فریاد کشید و گفت خواهش می از کشتن من صرف نظر کن توی خونه من دوتا تا جوجه چشم انتظار منن اگه براشون غذا نبرن حتما از گرسنگی میمیرن این بار هم دل شاهزاده بر رحم اومد لکلک بهش گفت قول میدم این محبت شما رو یه روزی تلافی کنم شاهزاده از لکلک لک پرسید آهای لکلک لک بیچاره تو چه جوری میتونه آخه محبت منو تلافی کنی؟ ولکلک هم جواب داد مگه این ضرب المثل یادت نیست که میگن اگه کوه به کوه نرسه آدم به آدم میرسه شاهزاده لبخند زد و به راهش ادامه داد بعد از طی کردن یه مسیری که زیاد هم طولانی نبود با دو نفر سرباز اخراجی روبرو شد یکی از سربازا از اون پرسید راهی کجا هستی؟ شاهزاده جواب داد دنبال کار میگردم. سرباز گفت اتفاقا ما هم دنبال کاریم. شاهزاده از همسفر شدن با اونها خوشحال شد و هر به راه افتادن. رفتند و رفتند و از قلمروی روی هفت پادشاه گذشتند. آخرش به قصر باشکوهی رسیدند که پادشاه روی راه پله های اون ایستاده بود. پادشاه گفت به نظر می دنبال چیزی می اونام هر ستا همزمان با هم جواب دادن چیزی که ما دنبالش می گردیم فقط کاره. پادشاه سروازو گفت شما رو به عنوان کالسکران به خدمت می گیرم. اما به پسرک گفت از این به بعد تو یکی از پیشخدمت های من باش. بعد هم یکی از اتاقهای قصر رو که نزدیک به اتاق خودش بود در اختیار پسرک قرار داد. وقتی سربازان نوشنده خیلی حسودیشون شد. چون اونها خبر نداشتن که خود پسرک یه شاهزاد است. به خاطر همین تصمیم گرفتن که هر طور شده نخشهی بکشند و پسرک رو پیش پادشاه خراب کنند. پیش پادشاه رفتند و گفتند علا حضرت وظیفه خودمون میدونیم که به شما اطلاع بدیم که این پیش خدمت جدید شما گفته که اگه اون روزی مباشر شما بشه، اون وقتی یه دونه گندم از انبار ذخیره گندم هم هدر نمیره. بنابراین بهتره که دستور بدید که یه گونی گندم با یه گونی جو مخلوط بشه و بعد هم از این جوونک بخواید که اون رو تو مدت دو ساعت از همدیگه تفکیک کنه تا سهت حرفاشو رو به اثبات برسونه. پادشاه که آدم ضعیفی بود به حرفهای اون دوتا سرباز خبیس گوش داد و بعد هم دستور داد که شاهزاده تیه مدتی که جلسه شورای سلطنتی به پایان میرسه دونه های جو و گندم رو از هم جدا کنه در پادشاه به شاهزاده گفت که اگه از احده این کار برنیاد مجازات مرگ در انتظارشه شاهزاده بخت برگشته به پادشاه گفت که هرگز چنین ادعای نکرده اما پادشاه اعتناعی به حرفهای اون نکرد و شاهزاده رو به یه اتاق خالی فرستاد. بعد هم از خدمتکاراش خواست که دوتا تا گونی گندم و جورو کف اتاق بریزن. شاهزاده نمیدونست که چجوری باید باید های گندم و جورو رو از هم دیگه جدا کنه. از اون گذشته اگه اون هزار نفر رو هم به کمک میگرفت، باز هم یه هفته طول میکشید تا این کار رو انجام بده. شاهزاده گوشه‌ای از اتاق نشست و زانووی قنبغل گرفت. زار زار شروع به گریه کرد. همون لحظه یک کبوتر جنگلی از پنجره اتاق وارد شد و ازش پرسید آهای شاهزاده مهربون چرا گریه میکنی؟ شاهزاده جواب داد با این کاری که از من خواستن و مجازات مرگ در انتظارمه چجوری میتونم گریه نکنم؟ کبوتر جنگلی اون رو دلداری داد و گفت چیزی نشده که انقدر خودتو ناراحت میکنی من پادشاه کبوترهای جنگلیم. همون کبوتری که وقتی گرس نتون بود از کشتنش صرف نظر کردید؟ من مدیون شمام باید یه روزی محبت شما رو تلافی کنم. و اینطوری شد که پادشاه کبوترای جنگلی از پنجره اتاق بیرون رفت. بعد از چند لحظه با تعداد زیادی از دوستاش پیش شاهزاده برگشت. اونا بلا فاصله دست بکار شدن و دونه گندم رو از جو جدا کردن. توی کیسه ها ریختن و قبل از اینکه که جلسه پادشاه به پایان برسه کار جدا سازی رو تموم کردن وقتی پادشاه به اتاق پسرک برگشت اون چرا که میدید باور نمی کرد اون با دقت کیسه ها رو بررسی کرد یه دونه گندم رو قاطی دونه های جو یا یه دونه دونه جو رو قاطی دونه های گندم ندید پادشاه همونطور که مهارت و توانایی شاهزاده رو تحسین می کرد بلافاصله فاصله اون رو به عنوان مباشر خودش انتخاب کرد اون دو تا سرواز بد جنس و بد تینت هم بعد از اون بیشتر از قبل حسودی میکردن. و هر روز به فکر طراحی توتعی جدید بودن یه روز دوباره اون دو تا سرواز پیش پادشاه اومدند و بهش گفتن اله حضرت این جوونی که مباشرتون هست اخیرا ادعا کرده که اگه یه روزی خزاندار پادشاه بشه یه سکه هم از خزانه سلطنتی گم نمیشه. حالا از شما میخواین که انگشتر شاهزاده خانم رو توی روتخونه بندازید و از اون بخوایید که اون رو پیدا کنه. وقت معلوم میشه که آیا اون مرد عمله یا اینکه فقط یه دروغگوی پرمدعا است. این بار هم پادشاه احمق گول حرفای اون دو تا سرباز رو خورد و بلافاصله دستور داد که اون رو احضارش کنن. پادشاه رو به شاهزاده کرد و گفت: پسرم. شنیدم که ادعا کردی اگه خزانه خزانه‌دار من بشی هرگز یه سکه کوچیک هم از خزانه گم نمیشه حالا برای اینکه به اثبات برسونین ادعای خودت رو میخوام که انگشتر شاهزاده خانم رو توی رودخونه بندازم و تو باید اون رو قبل از تموم شدن جلسه شورای سلطنتی پیدا کنی و وگرنه سرت رو به باد میدی. شاهزاده با مطرح شدن همچین ادعایی دوباره این قضیه رو انکار کرد اما پادشاه باز هم به حرف های اون اعتنایی نکرد بالاخره شاهزاده دوباره تو گوشه ای از اتاقش نشست و زانوی غم بغل گرفت و با خودش گفت حالا که قراره این انگشتر رو از توی رودخونه پیدا کنم و میدونم که کار غیرممکنیم هم هست اما نشستن توی قصر هم دردی رو دوانه نمیکنه. به خاطر همین شاهزاده کنار رودخونه رفت و نگاه عمیقی به اون انداخت. هرچند که آب زلال بود اما اثری از, از انگشتر دیده نمی‌شد. آخرش آخرشم ناامید شد و پای درختی نشست و شروع به گریه کرد. یه دفعه شاهزاده از بالای سرش یه صدایی شنید. سرش رو بلند کرد و دید مرقابی وحشی بالای سرش نشسته. مرقابی وحشی گفت چه اتفاقی برات افتاده که اینجوری ناراحت و غمگینی؟ شاهزاده جواب داد. پادشاه یه حلقه انگشتری توی روتخونه انداخته و اگه من اونو براش پیدا نکنم، مرگ من حتمیه. مرقابی جواب داد، لازم نیست خواهی تا اینقدر نراحت کنی. من کمکت میکنم. من همون مرقابی وحشی هستم که از کشتنش صرف نظر کردی. حالا نوبت منه که محبتت رو جبران کنم. بعد هم مرقابی به پرواز در اومد و چند دقیقه بعد با دسته ای از دوستاش، کنار رودخونه برگشت. اونا همشون تو آب شیرجه میرفتند و همه جای روتخونه رو جستجو کردن. آخرت تونستن انگشتر شاهزاده خانم رو پیدا کنن. قبل از اینکه جلسه شورای سلطنتی به پایان برسه، حلقه انگشتر پیدا شد. پادشاه با دیدن حلقه انگشتر تو دستای شاهزاده، زیرکی و مهارت اون رو تحسین کرد. و فاصله اون رو به سمت خزاندار جواهرات سلطنتی انتخاب کرد. شاید فکر می کنید که پادشاه دست از سر شاهزاده برداشته و اون رو به حال خودش گذاشته. اما نه. از اونجایی که سرشت و ذات انسانها به سختی تغییر میکنه بار دیگه پادشاه گول توته های اون دوتا سرباز بدذات رو خورد. سربازا دوباره پیش پادشاه اومده بودند و بهش گفته بودند علا حضرت، این جوونی که خزانهدار جواهرات سلطنتیه ادعا کرده که امشب توی این قصر کودکی به دنیا میاد که قادره به تموم زبانهای دنیا حرف بزنه به هر نوع آلات موسیقی رو هم میتونه بنوازه اگه این کودک بزرگ بشه حتما یه جادوگر بزرگ و نیرومند میشه و میتونه آینده رو پیشفینی کنه پادشاه بعد از شنیدن حرفای اون دوتا سرباز خیلی عصبانی شد چون خود پادشاه قبلا سعی کرده بود که رمز و راز جادوگری رو بدونه اما تو این کار شکست خورده بود اما حالا که میدید خزانهدارش وجود چنین قدرتی رو پیش بینی کرده خیلی سریع اون رو پیش خودش احضار کرد و بهش گفت آهای جوان حالا که چنین ادعایی کردی در صورتی که درست عذاب در نیاد دستور میدم تا تو رو به دم اسب ببندن و اونقدر روی زمین بکشن تا بمیری. با وجود اون چی که این دوتا سرباز به گوش پادشاه رسونده بودن شاهزاده هم درست مثل پادشاه چیزی از جادوگری نمیدونست و حالا که پادشاه از اون یه کار غیر ممکن خواسته بود دوباره شاهزاده گوشه از اتاق نشست و شروع به گریه کرد. در زم این دفعه اون حق خارج شدن از اتاقش رو هم نداشت وقتی توی اتاقش زندونی بود صدای ضربههایی رو از پنجره اتاقش میشنید سرش رو بلند کرد و لکلک لک رو دید که دمی پنجرش نشسته لکلک لک ازش پرسید چی طور انقدر ناراحت کرده شاهزاده گفت یه نفر رفته پیش پادشاه و بهش گفته که من پیشبینی کردم که امشب یه بچهای تو قصد متولد میشه که میتونه به همه زبونهای دنیا صحبت کنه و در زم قادره که همه ی آلات موسیقی رو هم بنوازه من نه جادوگری بلدم و نه چنین ادعایی کردم اگه این حادثه امشب اتفاق نیفته قرار منو به دم اسب ببندند و انقدر روی زمین منو رو بکشن تا من بمیرم بلاخدا بعد شنیدن این حرفها بلافاصله هر کشید و بعد هم خیلی زود با نوزادی که توی منقارش بود به اتاق شاهزاده برگشت. نوزاد رو که دور قنداق پیچیده شده بود رو کنار شاهزاده گذاشت. کنار نوزاد یه اود هم گذاشت. همون موقع نوزاد دستهاش رو از توی قنداق بیرون آورد و شروع به نواختن اود کرد. انقدر آهنگ دلنشینی مینواخت که شاهزاده هم برای لحظه تمام غم و هاش رو پراموش کرده بود. بعد به نوزاد یه سنتور و یه نیلوک داده شد. اونها هم به قشنگی اود نواخت. شاهزاده دل و پیدا کرد و با نوزاد به تموم زبونهایی که بلد بود صحبت کرد. نوزاد راحتی جواب شاهزاده رو میداد. اون با چنان مهارت و زیبایی حرف میزد که هیچی از قادر نبود تشخیص بده که کدوم یکی از این زبون ها زبون مادری اونه. صبح روز بعد پادشاه یک راست به اتاق شاهزاده رفت و در کمال ناباوری نوزاد و توانایی های اون رو به چشم دید. به خاطر همون پادشاه گفت حالا که قدرت جادوگری تو در حدیه که میتونی همچین نوزادی رو به وجود بیاری؟ باید قدرتمندترین ترین جادوگری باشی که تا به حال روی زمین زندگی کرده. از تو میخوام که با دخترم ازدواج کنی. و از اونجایی که پادشاه عادتش این بود که خواستهاش به سرعت انجام بشن، بلا فاصله دستور داد که مراسم جشن ازدواج دخترش با شاهزاده برگزار بشه. جشن ازدواج با شکوه زیاد برپا شد. پادشاه رو به شاهزاده کرد و گفت حالا که تو فرزند واقعی من شدی به من بگو که از چه هنر و ترفندهایی استفاده کردی تا بتونی کارهایی رو که از تو میخواستم انجام بدی شاهزاده گفت الی حضرت من درباره سهر و جادو چیزی نمیدونم اما به نوعی تونستم از خطر مرد که می میکرد خودم رو خلاص کنم همون لحظه اون علت فرار خودش از دست پدر ناتنیش رو برای پادشاه گفت به همینطور موضوع صرف نظر کردن از کشتن اون ستا پرنده و اینکه چجوری با اون دوتا سرباز مراقات داشته پادشاه از اینکه دخترش نه با یک فرد عادی بلکه با یه شاهزاده ازدواج کرده خیلی خوشحال شد و بعدش هم اون دوتا سرباز رو به مجازات شلاق محکوم کرد و قبل از اینکه اونها رو از سرزمینش تبعید کنه تهدیدشون کرد که اگر دوباره به خاک کشورش برگردن همون مجازات مرگ که برای شاهزاده در نظر گرفته بود در انتظارشون خواهد بود کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهراندوستی تی نقطه ام ای سلاش ای ای ای ای آی نشانی ویبلاگ ما ام ای دی بی ال او جی اف ای کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی